افسونه افسانه افسانه یکی از وجوه جذاب هر کشوره و خیلی ها در دنیا عاشق این هستند که به مقصد و یا کشوری خاص سفر کنند تا آثار باقی مونده از اون داستان و یا اون افسانه رو به چشم ببینن. هرچند که در تعریف افسانه گفته شده افسانه داستانی خیالی بوده که مردم میساختند تا جذابیت های فرهنگی و قومی خودشون رو نمایی کنند و در نهایت اونا اونارو جاودانه کنند. اما نظریه به نام افسانه های تطبیقی این تعریف رایجو تا حدودی رد میکنه و میگه افسانه ها از داستان های واقعی به وجود اومدن طبق این نظریه اگه بیشتر افسانه های جهانو که متعلق به ملل مختلف هستند با داستان و وقایع تاریخی واقعی اون سرزمین مقایسه کنیم ریشه هایی از یه حادثه واقعی رو در اون پیدا خواهیم کرد افثانه های چینی به عنوان یکی از پرچمداران افسانه‌های شنیدنی و جالب جهان در صدر لیست تمامی داستان ها قرار می گیرن. تأثیر این افسانه‌ها در فرهنگ چین به قدر زیاده که حتی امروزه در جازبه ها، سبک زندگی سنتی چینی ها،, ها و فرهنگ کلی چین میشه اونها رو به وضوح دید در بین این افسانه ها بعضی ها بسیار معروف و المللی هستند و بعضی ها کمتر شناخته شدن. با این حال این باعث نمیشه که از اهمیت افسانه های کمتر شناخته شده در بین مردم کاسته بشه. این مقدمه را براتون گفتم تا در ادامه افسانه چینی رو براتون تعریف کنم. ای به نام سه برادر سه برادر در سالهای پایانی سلسله یه خان اتفاق میافته که دولت مرکزی دوچاره فساد بسیار شده بود و شورش های بسیاری مثل قیام دستار ها امپراتوری رو به سوی نابودی پیش می برد و اما افسانه سه برادر که به افسانه سه قلم هم معروفه ماجرای سه برادر از یه روز بهاری در باغ هلو شروع میشه از اون لحظه ای که لیو بی، گوانیو و جانگفه کنار هم نشسته بودن هر سه در فکر فرو رفته بودن سکوت معناداری بین اونها حاکم بود جز صدای پرندگان و طبیعتی بکر چیزی به گوش نمیرسید ناگهان لیو بیگ سکوتو سکوت ما میتونهد به ضرر امپراتوری تموم بشه اینکه یه جا بشینیم و دست رو دست بذاریم و به این فکر کنیم که امپراتوری چین داره از بین میره چاره کار نیست گوانیو چاره کار نیست چانگفه منو گوانیو هم با تو موافق نمیلیم به اما به نظر تو کشور به این بزرگی و با این همه وسط و این همه جمعیت ما سه چه کاری ازمون برمیاد فکر درست میگه انقدر تو این کشور هرجمرج فساد هست که ما ستا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم لیوبای میتونیم گوانیو باید بخوای ما هر از طرفداران امپراتوری هستیم و میدونیم که اگه وضع به همین منوار ادامه داشته باشه قدرت از دست جناب امپراتور خارج میشه و به دست دشمنانش میفته پس باید به این وضعیت خاتمه بده خیلی ها میخوام به این وضعیت خاتمه بدن لیو اما نمیتونن میدونی چرا چون ساده نیست چون اندازه و میزان مشکلات این سرزمین بیشتر از توانیمون ما نه نه جنگ نه این یعنی تسلیم یعنی کنار اومدن با فساد و هرج ما چون نمیخوایم کاری انجام بدیم میگیم نمیتونه ولی حتما یه راهی برای رهایی از این مشکلات هست امپراتور با اون ارتشی که داره نمیتونه با دشمنانش مبارزه کنه و اونها رو از سر راه برداره ما سه نفر چطور میتونیم با دست خالی این همه فساد و هرج و مرج رو از بین ببریم باید به فکر یه راه حل درست باشیم یه راه حل که بتونیم در کمترین زمان ممکن به پیروزی برسیم سه ساعت ها با هم حرف زدند هر کدومشون از زاویه نگاه خودشون به مشکلاتی که در کشور بود نگاه میکردند با این همه اصرار لیوبگ بر این بود که باید راه چاره برای مقابله با هرج و مرج و فساد اندیشید تا قدرت از دست رفته ای امپراتوری رو به او برگردوند او میدونست که چاره کار دست رو دست گذاشتن و تسلیم شدن نیست من نمیتونم نمیتونم مثل شما تسلیم این مشکلات بشم کشور پر از هرج و مرج و فساد شده این یعنی آفت این وضع برای من قابل تحمل نیست چون میخوام زندگی کنم چون قرار فرزندان من در این سرزمین به دنیا بیان و زندگی کنن چون اونها به امنیت و آرامش نیاز دارن دلم نمیخواد دلم نمیخواد وقتی اونا به دنیا اومدن کشورم همینقدر درگیر مشکلات و نابسامانی باشه. جاینت فای. با اینکه میدونم تعدادمون کمه و با این تعداد کاری از دستمون ساخته نیست ولی هر کاری بگی انجام میدیم لیو بی. من مثل تو دلم میخواد خودم و خانواده‌ام در آرامش و امنیت زندگی کنیم. تو چی میگی گانجو؟ منم چه فکر میکنم ما خیلی هم نمیتونیم تو از بین بردن این مشکلات تأثیری داشته باشیم ولی هر راهی که تو با میریم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. منم دلم نمیخواد در سرزمینی پر از فساد و هر جو زندگی کنم راهی که من میرم به نفع خودمون مردممون و کشورمونه چرا هیلیو به؟ اتحاد ما نفر در وحری اول باید با هم پیمان برادری ببندیم باید با هم عد کنیم که هیچ چیز و هیچ کس نتونه بینمون فاصله بیند باید عد کنیم که در هر شرایطی پشت و پناه هم باشیم و مثل کوه مقاوم باشیم و هیچ دشمنی نتونه با تفرق افکانی بین ما نفوز کنه خب چه میگی؟ جانفی من کنارت اسمبلیو بی گانیو منم کنارت اسمبلیو بی. فگ و گوانیو برای برگردوندن قدرت به خاندان امپراتوری اعلام آمادگی کردند و به هم قول دادند تا جایی که میتونن و تا زمانی که جان در بدن دارند مبارزه کنن. آنها با اینکه برادر نبودند، اما می تا پیمان برادرانه با هم ببندن و به هم قول بدن که درست مثل سه برادر حامی هم باشن و هرگز در این راه به هم خیانت نکنند. اون سه نفر برای خدایان قربانی کردند و برای شادی مردگان دعا خوندن تا عهدشون پا بر جا بمونه بعد هم هر سه با هم عهدی بستن بیاییم با هم عهدی جاودانه ببندیم عهدی ماندگار جنگفی گوانیو بله لیو بی. ما لیو بی گوانیو جنگفی جن میخوریم تا دلها و من را برای نجات یکدیگر از خطر مبارزه در راه میهن و نجات مردم به یکدیگر پیوند بزنیم میدانیم که خداوند ما را در یک روز متولد نکرده اما سر آن داریم که هر در یک روز و در کنار یکدیگر بمیریم آسمان و زمین را بر این سوگند برادری گواها میگیریم اگر یکی از ما سوگند خود را بشند باشد, باشد که آسمان و انسانها برای تنبیه او با یک دیگر متحد شوند. لیو بی، و جانگفی عهدی برادرانه با هم بستن این در حالی بود که کشور چین به دو قلم رو تقسیم شده بود ساو ساو در شمال قلم ویو تحسیز کرده بود و سوانچوان در جنوب قلم روی ورو به همین دلیل هم لیو بی تصمیم گرفت قبل از هر اقدامی با برادران و همپیمانانش جلسه استراری تشکیل بده چی شده که از ما خاصی به این غار بیاییم؟ در شرایط خاصی قرار داریم گوانیو حالا که ساو ساو و سونچوان در شمال و جنوب قلم روحاشون رو تشکیل دادن باید ما هم توی نقطه امن از کشور قلم روی جدیدی رو تأسیس کنیم تا همه ی کسانی که با ما هدف مشترک دارن و خواهان برگردوندن قدرت به خاندان امپراتوری هستند بتونن به ما ملحق بشند وقتی شمال و جنوب در قلمرو دشمنه ما برای تأسیس روی جدید یا باید به غرب بریم یا شرق. درست جنگفه. ما باید در غرب یا شرق مستقر بشیم. باید از دو قلمرو دیگه فاصله داشته باشیم. اما در این حال اونها و عمل کردشون رو هم زیر نظر داشته باشیم ما در حال حاضر هیچ متحدی رو در غرب یا شرق نداریم. چطور میتونیم اونجا قلم روی جدیدی رو تأسیس کنیم؟ من دوستی دارم به نام چکا کومینگ که بهش جوگه لیانک هم میگن فردا به اتفاق به دیدنش میریم. اون تو کشور نفوذ زیادی داره و میتونه به ما کمک کنه تا قلم روه در قرب چین تاسیس کنیم. سه برادر راهی قرب کشور شدن و بعد از دیدار با چکا و بهره بردن از مشاوره های این مرد خیراتمند موفق شدن قلم رو در قرب تحسیز کنند و نام قلم شو بذارن. از اون روز به بعد وظیفه اونا سختر شده بود. لیو بی فرمان روایی قلم شو رو به عهده گرفته بود. جانگفی و گوانیو هم جنرال های ارتش بودند چکا هم به عنوان مشاور لیو بی انجام وظیفه می کرد. حالا اونها باید مبارزه با دشمنو شروع می کردند و به دنبال راهی برای بالا رفتن قدرت امپراتوری می بودند ازت ممنونیم جناب چکاکو می اگه شما نبودین من و و گوانیو نمی تونستیم به این زودی قلم رو به شو رو تشکیل بدیم درسته که من به شما کمک کردم لیا بین اما شما هم در تصمیمی که گرفته بودید مصمم بودید و میخواستید هر طور شده قدرت امپراتوری رو به این خاندان برگردونید حالا که قلم روی گرفته به ما بگیم مبرزر از کجا باش شروع کنیم جناب چکا خب باید اعتراف کنم که در افتادن با دشمن سرسختی مثل ساو و ساده نیست جنگ فهی. اون ارتش قدرتمندی داره نفوذ زیادی هم در سراسر کشور داره پس باید برای مقابله با اون بهترین راه ها رو امتحام کنیم از وقتی که قلم تعداد اندکی که تونستم به ما ملحق بشم پس در چنین شرایطی نمیتونیم با سپاهیان سا و سا وارد جنگ بشیم درسته؟ درسته گوانگو به نظر من در همین ابتدا باید سعی کنیم نیروهای زیادی رو جذب کنیم تعداد سربازانمون که زیاد شد اون وقت میتونیم به فکر شروع مبارزه باشیم جل به اعتماد این افراد ساده نیست جناب چکاکومینگ برای همینم تعداد نیروهایی که به ما ملحق شدند. میدونم لیووی، ولی شما میتونید از همین تعداد نیرویی که به شما اعتماد کردن و بهتون ملحق شدن استفاده کنید. همینا میتونن سربازای زیادی رو جذب قلم رو به شما کنن. اینها میتونن اهداف شما رو برای مردم شرح بدن. اگه مردم بدونن شما از طرفداران امپراتوری هستید و هدفتون اینه که قدرت رو به خاندان امپراتوری برگردونید، خیلی زود به شما ملحق میشن. درست؟ فکر کنم در وهله اول باید فکر افزایش نیرو هامون باشیم به جناب چکا کومنگ. یعنی ام. فکر میکنی میتونیم انقدر نیرو جمع کنیم که بشه با لشکر سا, سا مبارزه کرد؟ نمیدونم گویا باید ببینیم چه تعداد نیرو به ما ملحق میشه و ما چقدر میتونیم به این نیروها فنون نظامی و رزمی رو یاد بدیم. وقتی همه چیز اونطوری که پیش‌بینی کردیم پیش بعد میتونیم درباره مبارزه با ساوساوت تصمیم بگیریم. جانگفی و گوانیو با کمک نیروهایی که به آنها ملحق شده بودند، تبلیغاتی را برای جذب سربازان جدید شروع کردند و تونستند در زمان کوتاهی تعداد زیادی از مردم و رو به رویشون دعوت کنند. همه آنها خواهان برگردوندن قدرت به امپراتوری بودند. جانگفی و گوانیو هم وظیفه آموزش رسمی رو به نیروهای تازه ملحق شده به عهده داشتند. طوله نکشید که قلم روی شو صاحب سپاهی صد هزار نفری شد میبینی لیو بی؟ میبینی؟ انگار همین دیروز بود که قلم روی شو رو تشکیل دادیم اما به همین زودی صاحب سپاهی صد هزار نفری شدیم از تو ممنونم جناب چکا در این مدت اگر مشاوره های شما نبود نمیتونستیم به چنین موقعیتی برسیم خب حالا که هم سپاه داریم و همتبر نظامی وقتش نرسیدی که به سا و سا و قلم روی اون حمله کنیم من فکر میکنم برای جنگیدن با سا, و سا و هنوز کمی زوده جنگ. تو چی میگی؟ به نظر منم زوده درسته که ما سد هزار سرباز آماده جنگ در اختیار داریم اما یادمون نره که هنوز هم تعداد نیروهای سا و, سا و چندین برابر نیروهای ماست ولی فراموش شکنه که ما سربازان زبدب و جای رو اختیار داریم که هر کدومشون بتونن حریفه 20 یا شه از سی تا سربازان ساسا سا بشن ببخشید جناب جنگفه ولی منم با لیو بی و گوانگو موافقه یعنی شما معتقدین که الان برای حمله به ساسا و, سا و زوده؟ بله در حال حاضر ما در قرب کشوریم از قرب تا شمال راه زیادی در پیش داریم قبول کنیم که سپاهیان ما اگه بخوان این همه راه رو برن تا به قلمرو ساوسا برسند خسته میشن و توان نظامی و رزمیشون نصف میشه. پیشنهاد دیگه ای دی درین جناب چاکا کومینگ؟ بله جوانجو اما قبل از طرح پیشنهاد ترجیح میدم کمی به چند و چون اون فکر کنم. باید همه جوانه به این فکر بررسی بشه تا مطمئن بشن با اجرا و عملی شدن اون تر یه قدم به پیروزی نزدیک میشه. گذشت. در حالی که جانگفی و گوانیو سرگرم جذب نیروهای مردمی جدید برای گسترش سپاهیان قلم رویشون بودن چکاکومینکم به فکر طرح ای برای حمله به قلم روی ساوساو ساو بود تا اینکه یه شب لیو بی جانگفی و گوانیو رو دعوت میکنه تا با اونا درباره موضوع مهمی حرف بزنه خب ب... بگو ببینم نیروها در چه وضعیتی هستن جانگ فین؟ عالی. هر روز داره به تعداد سربازمون اضافه میشه جناب چکاکومینگ. من و گوانگ با تمام قدرت به اونا فنون رزمی و آموزش میدیم. آیا جناب چکاکومینگ از طرح این سال دلیل خاصی دارن؟ بله یوبئی. افسوران من دلیل جورایی به حمله به قلمرو و, و مربوط بشه جناب چکاکومینگ. امین طور گوانگ در این چند روز من خیلی فکر کردم. به نظرم وقتش رسیده که با تمام قدرت به ساو ساو حمله کنیم درست شنیدم برنی شرایط ما برای جنگ با لشگر ساو ساو مناسبه یعنی ما میتونیم لشکر چند صد هزار نفری ساو ساو رو شکست بدیم؟ شاید جناب چکاکومنگ برای اجرای این تصمیم نقشه دیگه که هم در دارم درست حد زدی گوانگو من تمایل دارم برای حمله به ساساو با سونچوان وارد مذاکره بشیم سونچوان؟ بله سونچوان؟ درسته که سونچوان دشمن ماست درسته که اون هم در حال حاضر قلم رو قدرتمند بور رو تشکیل داده اما یادمون نره که سونچوان رابطه خوبی با ساساو نداره حتی یه جورایی زخم خورده ساساوهه حس ما هم میتونیم از این نقطه ضعف استفاده کنیم و برای حمله به سا ساو با چوان وارد مذاکره بشیم خب چی میگید؟ اگه، اگه سونتشوان به ما خیانت کرد چی؟ اون خیانت نمی کنه در این سرزمین همه خواهان قدرتن سون سونتشوان میتونه از این راه حریف قدرتمندی مثل ساو ساو رو از سر راه برداره و به قدرتش اضافه کنه اما که قلم روی قدرت سونچوان افزایش پیدا کرد میتونه به دشمنی بزرگ برای ما تبدیل بشه ما این اجازه رو به سونچوان نمیدیم گونگون در این نبرد قدرت اصلی و هدایت نیروها دست ماست و سپاهیان سونچوان مثل سیاهی لشکر عمل میکنن جناب چکا کامینگ فکر میکنین سونچوان این همکاری رو بپذیره؟ آب نمیدونم باید با وارد مزاکره بشیم و اگر نپذیره؟ نمیتونم با این اگر و اماها فکرم و مخدوش کنم بوانیو. به نظر من بهتر فردا به اتفاق به دیدن سونچوان بریم بعد در این باره باهاش حرف بزنیم اگه پذیرفت که هیچ اگه نپذیرفت برای شکست دادن لشکر ساوساو دنبال یه راه دیگه میگرد چکاکومینگ همراه لیوبی بی و گوان یو و جانگ فی بدیدار سوانچو حکم قلم رو وو رفتن. چکاکومینگ از سوانچو خواست که با قلم روش رو به رهبری لیو بی هم دست بشه تا به اتفاق به جنگ ساوساو برند. سونچوان بعد از کمی پرسجو بالاخره موافقت کرد و دو فرمان روا تصمیم گرفتند در زمان خاصی سپاهیانشون در یه منطقه جمع کنند و راهی شمال کشور بشن و با سپاهیان ساوساو بجنگن اجازه ندین همه چیزی به پیروزی دامن داریو بی؟ بهش سر و ضده مارش تور میشاند. خیلی زودی رو هایت هزار تو میدان. سپاه صاحب نباید پیروز میدان کارش بشه. آسی بارانه. بله جناب چکا کومی زود باید با تو صحبت اتفاقی نه، باید برای اقدام مهم در کشور بشیم چه از دارم؟ بیا وقت تو نکن نیو نکن جناب چکاکومینگ و لیو وارد چادر فرماندهی شدند و چکاکومینگ لیو در جریان نقشهی گذاشت که اگه عملی میشد پیروزی قلم شو بر قلم روی ساوسا سا حتمی بود اما لیو در عملی شدن این نقشه تردید داشت چی داریم می جناب چکاکومینگ؟ این کار تقریبا غیر ممکنه اگه این اتفاق یفته پیروزی ما بر سپاه ساوسا سا حتمی لیو ولی،, ولی چطوری نمیشه یعنی ممکن نیست ببینم به کجای این نقشه شک داری به که ممکنه نیروهای ما غافلگیر بشن ممکنه همهشون کشته بشن و در آستانه پیروزی شکست نصیبمون بشه وقتی اختصاریه قریب به اتفاق سپاه ساوساو الان اینجا و در حال نبرد هستن وقتی خود ساوساو و فرماندهان ارشد ارتشش اینجا و در حال نبرد هستن کی قرار نیروهای ما رو غافلگیر کنه به منو این نقشه اعتماد کن لیوبئی نمیدونم چی بگم من به این نقشه خیلی فکر کردم دیدم حالا که در قلم رو سوسا کسی جز مردم عادی نیست حالا که ارتش ساوس ساو در حال نبرده بهتر تعدادی از نیروهای زبده رو به طور مخفیانه به قلم رو سوسو و, و این قلم رو و تصرف کنیم میترسم جناب چکاکییک میترسم. نظرم جای هیچ ترس و واهمه ای نیست بسیار خوبه. ولی قبل از عملی شدن این نقشه ترجیح میدم باگانی و جانگفی هم حرف بزنم. اونها ژنرال های ارتش من هستند و باید در جریان این نقشه قرار بگیرم. موافقم من میرم از اونها دعوت کنم به چادر فرماندهی دیم. در حالی که نیروهای دو قلمرو در حال نبرد بودند، فرمان روا و فرماندهان قلمرو شو یعنی لیو بی، گوانیو و جانگ فی، به همراه چکا کومینگ در چادر فرماندهی جلسه مهمی رو تشکیل دادند. چکا کومینگ می دونست در حالی که ساوساو ساو و سپاهیانش در حال نبردند، فرصت خوبی برای ورود به قلمرو ساو ساوساو و تصرف این منطقه لیو تا حدودی با این نقشه موافق نبود اما وقتی با موافقت گوانیو و جواین فی رو شد او هم موافقت کرد و قرار بر این شد که تعدادی از نیروهای زبده سپاه لیو با همراهی چکا به سمت قلمرو ساو سا برند و اونو تصرف کنند خب ما برای رفتن آماده ایم لیو بی. از خدای خدایان برای تو و همراهانت پیروزی طلب میکنم جناب جنابت چکا کنیم اما ما هنوز هم یه سوال در ذهنمون بی جواب بود. چه سوالی؟ اینکه شما و سربازانت با چه ترفندی می وارد قلم رو به بو بشیم اگه مردم اون منطقه بفهمند شما نیروهای دشمن هستیم و قصد تصرف شهر رو داریم بهتون اجازه ورود به منطقه رو نمی حتی ممکنه شما رو به اسارت بگیرم و بعد هم زندانی کنم میدونم لیو وی من برای عملی شدن نقشه هم یه فکر بکر دارم فکری به محض اینکه من و سربازان تحت امرم به نزدیکی های قلمرو سا ساو ساو رسیدیم از همهشون میخوام که های مردم عادی رو بپوشن تا دیگران گمان نکنن که اینها سربازان من خب به محض اینکه به منطقه رسیدیم نیروها رو داخل شهر میفرستم و خودم هم روی دیوار شهر میشینم و چنگ, می نبازن. چنگ می نبازی. بله، محال کسی شک کنه که یه چنگ نبازی بین باقاست تسرفش شهر رو داره لیو بی. بعدش چکار میکنه؟ بعد نیروهایی که وارد شهر شدن به نقاط حساس شهر میان و اون شهر رو تسرف میکنن. و وقتی نقشه اون طوری که دلمون خواست خاص رفت من هم به نیروهای داخل شهر ملحق میشم. فکر نمیکنید؟ این نیان ممکنه اتفاقی براتون تون منظورم اینه که فکر نمیکنید ممکنه شنالسایدشیم؟ دلم میخواد بهت این اسمینان رو بدم که برای هر خطر احتمالی من آمادم آسود خاطر باش لیو من با پیروزی از این معمولیت برمیگردم امیدوارم جناب چکار کنید امیدوارم چکاکومینگ به همراه تعدادی از سربازان زبده لیو بی به طرق قلمروه ساوساو راه افتاد. با اینکه چکاکومینگ به لیو بی اطمینان داده بود که هیچ خطری اونو تهدید نمیکنه و میتونه با موفقیت به قلمروه ساوساو بره، اما لیو بی نگران بود و چشم انتظار. دیر وقت لیو بی. نمیخوای بخوابی؟ با این همه نگرانی خواب به چشمم نمیاد گوانگیو دلیل نگرانی چیه؟ ما که در نبرد با سپاه ساسا پیروز شدیم سربازان ما تمام شب و جش گرفتن درسته اما چند روزیه که از چکاکو مینگو همراهانش خبری ندادیم مدام فکر میکنم، نکنه بلایی سرشون اومده نکنه نقششون لو رفته با سربازان ساو ساو اونا رو زندانی کرده باشن نگرانید بی برادر اگه این اتفاق افتاده بود ما تالا متوجه می شد کی باید این خبر رو به ما بده؟ دشمن؟ مردان ساو ساو؟ نه گوانگیو. نه اگه چکاکو میگو مینگو هم آزاد بودن و به هدفشون رسیده بودن ما رو بی خبر نمیذاشتن فکر می کردم خبر پیروزی از سپاهیان ما خیلی خوشحالت می معلومه که خوشحالم به همون اندازهم جناب امپراتور از شنیدن این خبر خوشحاله اما قبول کن از دست دادن مشاوری مثل چکاکومی برام ساده نیست ایشون انقدر باهوش و زیرک است که به سادگی در دام سربازان ساسه سا گرفتار نشه ولی وقتی تا الان خبری از خودش و همراهانش نشده می شه حدس زد که اتفاق تلخی برایشون افتاده بسیارخوب اگر انقدر نگرانیم من میتونم همین فردا به اتفاق چند تا از سربازانم راهی شمال بشم میتونم برم و سرگوش یا بدم ببینم کسی از چکاکومینگو همراهانش خبر داره یا نه. تو دو... واقعا نحاسن این کارو بکنی؟ من برای حفظ و بهای امپراتوری چین هر کاری میکنم لیوبه بزد ممنونم گوهنگیو حالا میتونم برم و با خیال راحت بخوابه. برو برادر برو صبح روز بعد هنوز آفتاب تلو نکرده بود که گوانیو از سربازانش آماده ای رفتن به منطقه ساو شدند شدن ازت ممنونم گوانیو از اینجا تا قلم رو به ساو, ساو راه زیادیه این کار تو برای بقای امپراتوری خیلی ارزشمنده منده لازم نیست برادر. من میرم و با خبرهای خوش بر میگردم اگر در راه کسی رو دیدین به هیچ وجه بهش نگین از کجا آمدین و قصد دارین به کجا ب خیلی هم باید مراقب خودتون باشید. دلم نمیخواد براتون اتفاقی بیافتیم ما به زودی پیروزیمونو جشن میگیرم اون روز دلم میخواد تو و جانگفیم کنارم باشیم و با میده اون روز خب دیگه ما باید راه بیافتیم میخوام تا قبل از طول آفتاب آفتاب خودمونو به منطقه مرکزی برسونیم. برو گوانگیو برو خبر با خبرهای خوشمند ممنونم لیوبر هی سب کن چی شده مثل که یه سوار داره به ما نزدیک میشه میتونی ببینی اون سوار کیه نه بی اما اما صدای عصفش خدای من <تصفح> اون صدای عصف چکاکومینگه راست میگی آره بردن آره آره خودشه اون چکاکومینگه سلام سلام چکاکومینگ آه. فکر نمی کردن بیدر باشید ما هم فکر نمی کردیم شما این وقت روز اینجا برسید ببینم لیو بی جانگفی کجاست جانگفی همراه تعدادی از سربازانش سا و سا رو به منطقه شمال بود خب چه کار چه خبر خبرهای خوب لیو بی ما موفق شدیم وارد قلم رو به سا سا بشیم هر کدوم از سربازان ما تونستن ده ها نفر از مردم منطقه رو به حمایت از امپراتوری دعوت کنیم. آه این, این پیروزی ما به هدف من رسیدیم گوانگو. ما پیروز شدیم لیو بید. سا رو شکست دادیم و قدرت امپراتوری رو بالا بردیم. خدای من باورم نمیشه. باورم نمیشه. باور بشه لیو خیلی زود نیروهای امپراتوری وارد منطقه شمال میشن و این منطقه به تصرف نیروهای امپراتوری در میاد منطقه چون چی؟ سونجوان هم با شکست ساسا و تسلیم شد این منطقه هم به زودی پر میشه از سربازان جناب امپراتور. این یه پیروزی بزرگه. <تصفح> یه پیروزی بزرگ. <تصفح> <تصفح> برای یه پیروزی بزرگ باید چکار کرد؟ باید جشن گرفت. <تصفح> یه جشن بزرگ. <تصفح> <تصفح> <تصفح> بله دوستان با شکست ساو و لیو بی همراهانش تونستن قدرت امپراتور رو به اون برگردونند و افسانه سه برادر رو در سرزمین چین جاودانه کنن که این افسانه رو شنیدین دلم میخواد بگم که افسانه سه برادر فقط یه افسانه نیست درس برای وفاداری برای همبستگی وفای به عهد و خودباوری افسانه سه برادر تنظیم برای رادیو سحیلا خدادادی راوی محروخ افزلی بازیگران مهدی تهماسبی محمد رضا قلمبر اکبر ملایی علی دریایی کارگردان بهرام نژاد، افکتور محمد رضا قبادیفر صدا بردار محمد رضا محتشمی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی افسون زندگیتون دل نشین و مانا تا افسانه دیگر پترود